اصل دهم نمیدانم در زندگی همه این اینطور است یا برای من این اینطور بود که هیچ کدام از تغییر و تحول های زندگیم تدریجی نبود. همه آنقدر سریع و بدون زمینه انجام شد که مدتها بعد مهلت میشد باورشان کنم در آنها دقیق بشوم و بیاندیشم. مثل ازدواجم با محمد. مثل مرگ خانم جون یا مثل تغییر خانه که انقدر به سرعت انجام شد که بعدها همیشه فکر میکردم چطور بدون اینکه بفهمم از خانهی که بوی خانم جون و بچگی های خودم را میداد خانهی که از وقتی چشم باز کرده بودم آن را دیده بودم خانهی که همیشه خانم جون میگفت وقتی مادرت تو را حامله شد برای من قدم کردی و بابایت این خانه را خرید و توی اون اتاق رو به قبل به دنیا اومدی که حال اتاق منه خانه ای که توی آن خوشبختی و آرامش را با تک تک سلول هایم حس کرده بودم جدا شدم و دنیای خوش بچگی و آرامش و سپیدبختی را پشت سر جا گذاشتم. خانه جدید با وجود نو سازی و قشنگی یک چیز کم داشت و آن اثر و بوی وجود خانم جون بود که با اسم شد ما بیش از پیش احساس غریبی کنیم خانه ایمان توی کوچه ای عریض بود که خانه بزرگ داشت کوچه و محله شاید اعیانی تر بود ولی صفای کوچه قدیمی را نداشت نه از شرشور آب و درخت های تناور میان آن خبری بود نه اطر گل یاسی که از فراز دیوارها توی کوچه میریخت. انتهای کوچه یک خانه شمالی بود از سنگ سفید از دری بزرگ و سفید رنگ که وارد حیات می شدی روبرویت باقچه و پر از گل رنگارنگ داشت که اسم بیشترشان را نمیدانستم. و دو تا درخت تنومند کاج که دو طرف باقچه روبروی پنجره های خانه مرتب و منظم ایستاده بودند. دیگر نه از حوز و ماهی های قرمزش خبری بود، نه های کنار آن و سماور همیشه جوشان خانم جون و نه زمین نموری که از توی آن اطره ترشی و سرکه و گلاب های جور و جور می آمد. از چند تا پله پهن سنگی که بالا می‌رفتی، وارد ایوانی وسیع می شدی که سرتا سر جلوی ساختمان را گرفته بود. نردهها و حفاظ‌های روی درها از آهن ظریف و پیچ و خمدار سفید بود که نمای ساختمان را زیباتر می‌کرد. و روبروی پله‌ها دری بود که به ساختمان باز می‌شد و دو طرفش پنجره‌های بلند سرتاسری سری داشت. بعد از در ورودی ساختمان یک راه پهن بود که به دیوار دست راستی جالباسی بزرگ چوبی بود. روبرویش آینه ای سر که اطرافش گچبری ظریف داشت. و بعد یک حال وسیع. یک طرف حال دو اتاق بود که یکی از آنها شد اتاق مادر و پدرم و دومی بعدها شد اتاق من. روبرو راه پله های مارپیچی بود که به بالا میرفت. سمت چپ آشپزخانه دل باز داشت که نورش را از حیات خلوتی نقلی و تر و تمیز می گرفتفت و بالاخره سالونی که فقط با دو ستون گچبری و با فاصله از حال جدا میشد. از پله ها که بالا میرفتی وارد یک حال مربع شکل می شدی. اتاق روبروی پله‌ها، اتاق امیر شد. و اتاق کناری اتاق علی و اتاق دست چپی انبار وسایل و جهیزیه من. کنار آن هم دری بود که به حمام بزرگ و روشنی باز میشد. در طبقه دوم راه پله بود که باز به بالا میرفت بر آن آنچه به نظر میآمد که پله ها به پشت بام می رود در انتهای راه پله دری بود که به یک هشتی کوچک باز میشد. و از آنجا دو در چوبی، یکی به پشت بام و دیگری به اتاقی مستطیل شکل بسیار روشن راه داشت که از قرار انباری بزرگی بود که با حسن سلیقه تبدیل به یک سویت زیبا شده بود. دیوار شمالی اتاق سر تا سر شیشه بود و نیمی از دیوار جنوبی دیوار یک حمام کوچک با کاشی های سفید و سبز بود. و نیمی دیگر کمودی بزرگ و جادار که توی آن میشد حتی لباس عوض کرد و برای آن اتاق حکم انباری جادار را داشت که توی قفصه ها و تخت بندی کلی چیز جا میگرفت. روزی که آن اتاق را دیدم چقدر ذوق کردم در حالی که نمیدانستم آن اتاق که میشد گفت مثل خانه مستقل برای من و محمد بود روزی گور خوشبختی و آرزوهای من خواهد شد تفلک پدرم با خانه جدید غریبی میکرد تنها باری که به وضوح دیدم از کاری که کرده پشیمان است همان بار بود انگار احساس میکرد اشتباه کرده و برخلاف خانه قدیمی که با میل و رقبت بول خرج میکرد برای این خانه به سختی خرید میکرد به خصوص با تعویز اساسی خیلی مخالف بود. انگار دلش میخواست ته خاطراتش را نگه دارد و در عین حال دلش نمیآمد مادر را هم برنجاند. این بود که اساسیه قبلی در عین اینکه توی خانه پخش میشد، مادر سعی می کرد جلوی چشم پدر را با وسایل معنوس پر کند. خود مادر هم با اینکه سرش به رسیدگی و سر و سامان دادن خانه گرم بود هر کاری می کرد و هر چه می ورد زبانش یاد خانم جون بود و تقریبا تمام شب جمعه ها همراه پدرم می رفت سر خاک دیگر اصرهای پنج به جای صدای قرآن خانم جون و دعاهای شب جمعهاش بوی حلواهای مادر یادآور آور او بود بهجا به شدن ما تا عواسط آذر طول کشید. و من با اینکه تقریبا در کارها نتوانستم کمک کنم ولی آرام آرام حالم بهتر میشد. خواب آشفته کمتر سراغم میآمد و سرگرم شدن به اسباب کشی و جا افتادن توی خانه جدید مرا از حال و هوای قبلی دور کرد. قشنگ ترین جای آن خانه در نظر من اتاق خودمان بود. با چه عشقی آنجا را مرتب کردیم و چیدیم؟ پرده های مخمل مهمان خانهی قبلی را همراه مبل راحتی بزرگش که با خریدن مبل های جدید توی این خانه جای به خصوصی نداشت، مادر به ما داد. مبل را جلوی پنجره و زیر که با هم هماهنگ بود گذاشتیم. کنارش یک گلدان بزرگ سفال که نخل مرداب های بلند داشت. و سکنج دیوار میز تحریر بود و روبروی در تختمان. درست مثل یک خانه نقلی. فقط کتاب جا نداشت که توی قفسه بندی کموت جا دادیم. وقتی کارمان تمام شد امیر به شوخی گفت فقط یه آشپزخونه خونه کم دارین. حالا که این گاز و یخچالتونو هم بیارین گرفته بشیم همسایه؟ و من ته دل چقدر دوست داشتم که چنین چیزی امکان داشت. برای اولین بار توی آن اتاق بود که تعمه مستقل بودن را تجربه کردم. از همه چیز لذت می بردم. از مرتب کردن آنجا و به انتظار محمد نشستن، از پوشیدن پیراهنهای محمد که برایم مثل یک تونیک بلند و گشاد بود، و گردگیری کردن اتاقی که در خیال خانه میدانستم از کشمکش و سر به سر محمد گذاشتن و مثل بچه ها دنباله هم کردن از پوشیدن لباس او که همیشه بهش اعتراض داشت از چانه زدن سر یک مسئله درسی یا آوردن آب خنک از طبقه پایین آنجا برای اولین بار توی زندگیم احساس خوب کد خانه بودن را تجربه کردم. دوست داشتم هر روز اتاقمان را یک جور درست کنم. از جابجا جا کردن وسایل که داد محمد را در می آورد و من با موزیگری نمی گفتم که با کمک علی و امیر جایشان را عوض کردم حس خوشایند خانم خونه بودن به من دست میداد و از استراب و نگرانی او لذت می بردم. یادش به خیر از اینکه برایش مهم بود که من سختی نکشم یا کاری موفق توانم انجام ندهم چه احساس خوبی پیدا می کردم لذت بینهایت هایت عزیز بودن جسمم برای کسی که عزیزترین کسانم بود و هم را بندوار تصاحب کرده بود چه نقشه که برای خانه آینده داشتم و چه آرزوهایی که در سرم میپروراندم بی خبر از آینده ای که در انتظارم بود با عوض شدن خانه محمد هم از شر بیدار شدن های پی در پی نیمه شبها و گریه های مداوم روزها و افسردگی من نفسی راحت کشید و با اینکه بردن و آوردن من به مدرسه قبلی به کارهایش اضافه شده بود ولی راهی بود صبحها زودتر بیدار می شدیم و او مرا می رسند و ظهرها هم می پیش محترم خانم تا محمد بیاید دنبالم و توی همین روزها بود که به محترم خانم بیشتر نزدیک شدم. تفلی محترم خانم که تنها شده بود از طرفی دوری زری و فاطمه خانم و از طرفی قصه آقا مهدی آزارش میداد. همان یکی دو ساعت هم که زمان پیدا می کرد برایش قنیمت بود. و تمام محبت آنها را هم نثار من میکرد. و من بیشتر و بیشتر به خانواده محمد نزدیک میشدم و مهرشان به دلم مینشست. کم کم میدیدم مادر زری عوض میشود و مادر خودم میشود. محترم خانم را مثل مادر خودم میدیدم و چقدر دوستش داشتم. در این میان از زبان این مادر مهربان بود که با خصوصیات زندگی آنها آشنا می شدم. یک بار به من گفت: هر کی یه جوری باید بکشه من و حاجاقام از اول زندگیمون نه کم مالی داشتیم نه بین خودمون حرف و سخن بوده ولی همیشه کشمکش دیگران باعث قصمون شده. حسین آقا پدر محمد پسر اولی کاشانی بزرگ بود تا وقتی حاج منصور پدر شوهرم زنده بود روزگار به وفق مراد بود و این پنج تا برادر با هم بودند خدا فاطمه و مهدی رو به من داده بود که حاج مرحوم شد و حرف و سخنه شروع تا اون زمون هر پنج تا پسر توی حجره پدرشون سرگرم بودند بدون اینکه صدا از کسی در بیاد حجره هم بزرگ بود نه مثل اینکه که حالا هاجاقا داره زندگی خوب و راه بود سه تا جاری بودیم با دو تا کوچیکتر کچیک که عذب بودن توی یه خونه بزرگ که توی پامنار بود زندگی می اما یه سالی که از فوت هاجاقا گذشت یواش یواش زمزمه ها شروع شد همه ادعای سهم داشتن و هرکس کس می باشه که خب نمی تا همون اول تا زمزمه ها شروع شد بدون حرف فوری حساب کتاب کرد. سهم هر کس رو داد دستش و سهم خودش شد همین حجره که الان داره. خونه رو هم فروختن و همه جدا شدیم. همون سالها اون دو تا برادر کوچیکا بین خودمون باشه. تم به کار بده نبودن و رفتن خارج و پولاشون هم بردن. و توی همه این سالها هم دو بار بیشتر نیومدن ایران. یکیشون که زن خارجی گرفت اون یکی هم دوبار زن گرفته و طلاق داده. این دوتا هم که اینجا هستن پولشونو هی به این کار و اون کار زدن و از بین بردن و سرخر از حاجاقات طلب کار شدن. با اینکه خودشون شاهد بودن که روز اول همشون سهمشون یک اندازه بود. بتهها اونا کار پدرشونو ول کردن و رفتن سراغ کارهای دیگه همچین که کاسه نگرفت و پولو از بین رفت، هی پیغام دادن که ما راضی نیستیم و خلاصه حرف و سخن. منطقه مستقیم نه. دورا دور، هی به این و اون میگفتن. تا وقتی هم که هاش خانوم خدا بیامرز بود، بازم رفت و آمد بود. ولی هاش خانوم هم که به رحمت خدا رفت، با اینکه همه میدونستن که خدا بیامورز سهمش رو وقف کرده، سر بلند کردن و طلب عرض. این بود که میونه برادرشون کامل به هم خورد و حالا مگه عروسی و عضایی چیزی بشه هم رو ببینیم واسه این دلم میخواست بچه هام دوره هم باشن که اونم نشد اونام هر کدوم سر از یک دیار در حالا خدا کنه قریب تندرست باشن بازم راضیم به رضای خدا همیشه به هاجاقا می ما باید کاری کنیم بعد از خودمون بچه هامون به خاطر مال و منال پنجه تو روی هم نکشن. هاجاقا می گفت خیالت راحت. اگه اینا بچه منن این حرف توشون در نمیاد. ولی از وقتی این زن مهدی توی خانواده ما اومده، هرچی فکر نمی کردیم شده. خدا عالم بعد از این چی میشه؟ خدا این حرف رو نزنین، ایشاله که خودتون همیشه هستین ای مادر، اینا همش تاروفه، مرگ دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره مگه خانم جون نبود، چطور یک دفعه ور پرید؟ درست سنش بالا بود، ولی کسی باور می کرد اینجور یک دفعه و بی سر و صدا بره؟ عمر دست خداست و من فقط شب و روز دعا میکنم خدایا تا چشمام بازه؟ یکی اینکه سر و سامون گرفتن بچه هامو به خوشبختی ببینم، یکی هم خدا هرس پول توی دل بچه های من نندازه که مرضی از این بدتر نیست. یه روزگاری ما هممون سر یه صف توی یه خونه نشست و برخاست میکردیم نه چشم و همچشمی بود و نه فخر فروشی و حرف و حدیث. ولی حالا دیگه اونجور نیست. دلا سنگ شده و آدم ها ی جور دیگه. همینه که برکت ها رفته. یه موقع ما ستا جاری هر کدوم با دو تا بچه مثل ستا خواهر توی یه خونه زندگی میکردیم. هیچ کس هم صدامون رو نمیشنید. یه نونو اشکنه رو انقدر میگفتیم و میخندیدیم که از مرغ پلو به دهنمون خوشمزه تر بود. خوش بودیم و دلها یک رنگ و با صفا بود. از وقتی هرس پول آدما رو گرفت و چشم و همچشمی زیاد شد و دنبالش تجمل این شد که میبینی دلها فاصله گرفت انگار هرچی خونه ها جدا و بزرگتر شد دلها کوچیکتر و نظرها تنگتر شد قدیم توی یک خونه دوره هم یک هده زندگی میکردن اگه گلهی هم پیش میومد زود رفت میشد و میرفت به یه کارش حالا یه حرف کوچیک میشه داستان نبیگم فامیلای شوهرم همین خواهروی خودم اون خواهر بزرگم هم که اثر شوهر کردن فاطمه با من همچین چپ شده انگار نه انگار از یه مادر و یه پدر و یه خون هستیم حالا چرا؟ فاطمه رو برای پسرش میخواسته حالا هرچی بگی خواهر من زمان این که منو تو بگیم گذشته خود فاطمه نخواست مگه به خرجش میره؟ کینه ما رو به دل گرفته و هیچ جوری دلش صاف نمیشه خدا میدونه واسه همین بچه دار نشدن فاطمه چه حرفها که به گوش من نرسیده و دم نزدم حالا لابد مهدی رو هم به فهم دلش تر میشه برادرام هم که قدرت خدا سال تا سال نمیگن خواهر تو زنده یا مرده اینه که مادر من دهنم پر از خون هم باشه باز نمیکنم الان یه وقت به محمد ایراد میگیرم ولی خوب که فکر میکنم میبینم راست میگه. خدایش هم اگه قرار غمخار نباشن چه فایده. آدم دوست و رفیق و فامیل رو میخواد که قاتوق نونش باشن. اگه نه دشمن جون فراوونه. پریشبا به هاجقا میگفتم انگار بچمون محمد را میگفت. عقلش از خودم بیشتره. راست میگه یار دلم که نیستن؟ واسه بار دلم که آدم نباید غم بخوره، محترم خانم می گفت و من بی خبر از اینکه خودم بزودی یکی از همان بارهای دل خواهم شد، سردکان می دادم.